بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد خداوند متعال میفرمایند که وشراهو به ثمن بخص دراهم معدوده و کانو فیه من الظاهدین فروختن او را با پول حرام برهم معدود که نسبت به او بی رغبت مودن اللہ رب العالمین می میفرمایند که برادران یوسف را فروختن با پولی ناچیز و درهمهای معدود که نسبت به یوسف عليه السلام این برادرها بی رغبت بی علاقه بودند و از او گریزان بودند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که امام المفسرین هست میفرمایند که وقتی برادران یوسف علیه صلات و سلام را در چاه کنان انداختن دوباره آمدن بعد از سی روز خبری بگیرن گرچه یه هر روز قضا می آورد خبر میگیره، اما بقیه برادران هم بعد از سی روز آمدن وقتی که آمدن دیدن داخل چاه کسی نیست یوسف علیه السلام و سلام در چاه نیست وقتی در چاه نبود ردپای قافله رو گرفتن اینجا قافله ای بود که از اینجا عبور کردند ردپای قافله رو گرفتن دنبال قافله و کاروانی ها رفتن دیدن که یوسف علیه السلام و دست کاروانیان هست به گفتند که این شخصی که حالا شما دارید اون را میبرید این غلام ما هست از ما فرار کرده بعد اونها گرفتن صحبت کردند و فروختند همین بود که با چیزی معمولی فروختند و فرستادند حالا چقدر فروختن؟ خود عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیه کلمه بخص را تفسیر میکنند یعنی مال حرام به حرام فروختن. چرا؟ چونکه یوسف علیه صلات و سلام انسان آزادی بود و پولی که در مقابل انسان آزاد گرفته بشه این حرام هست تسمیه کلمه بخش هر جا در قرآن بکار برده شده است به معنی کم اما الا اینجا، الا در این سوره یوسف یعنی حرام که با پول حرام یوسف علیه صلات و سلام را فروختند در این وقت هم میگن که برکت در این پول نبود و پولی نادرست که اینها آورده بودند و اکرمه شاگرد الله ابن عباس رضی الله تعالی و شعبی بیفرماند که قلیل خیلی اندک اون برادر نازلین را مفت فروختاید پولی بی ارزش دادند و فرستادند دوباره امام المفسرین الله ابن عباس رضی الله تعالی نو میفرمایند که چقدر بود مبلغش می که 20 درهم 20 درهم ناچیز یوسف را فروختند و از که 22 درهم بودند و برادران ده نفر بودند نفر دو درهم گرفت سهمونه دو درهم شد و بعضی هم میگن که نه موالغی بیشتر و 22 درهم گرفتند که وقتی پولها رو تقسیم کردند یهوذا اینها رو قبول نکرد گفت من سهمی نمیخوام چون خیر یوسف را دوست داشت اما ناچار از برادران بود و در بعض روایت میاد که یک جفت کفش مایه دست لباس با 20 درهم با فروختن در بعضی میگن گفتن ما نمیبینیم یا یک مشکی از عطر مسک و طلا و جواهرات فروختند رفت تا اینکه بردم طرف مصر وکانو فيه من الظاهدین اما اینها نسبت به یوسف علیه الصلاة واسلام بی علاقه بودند محبت بیوسف علاقه یوسف نداشتن چرا اینجا بعضی میگن که همون کاروانیان بی علاقه شدن چون اونها فهمیدند که این که ما داری میخریم این غلام نیست از این خرید خودشان زیاد برا اونها خوشایند نبود یا شکلو دیدن گفت این غلامی نیست ما می در دل خود کاروانی کمی این سنگین شد اونها زیاد علاقه نشدن نشد ترسیدن که اللہ کسی ما داری می ظاهرا این غلامی نیست و این علاماتو هم دیدن که اینها دارن مفت می بیشتر این برای اونها دیگه سنگینی بی الله رب العالمین هم در دل اونها این خوف رانداخ را این یوسف یوسف علی این غلامی نیست هم فروشنده کمی حراسان هست و هم خریدار حراسانه خریدار داره میترسه ترسه که من کسی رو حالا یک که ظاهران غلامی نیست این کمی در خرید خودشون دوچار وسواس و, و شدن حالا داره ما می خیل. اما ظاهر کار اینجوری نیست اما در بعضی از روایات میآید وقتی که حضرت یوسف علیه السلام را فروختند و این برادران هم تهمت زدن. داخل قرآ همین تهمت ضع شده سرقت اگر این دزدی کرده فقط قصد اخل الله من قبل آخر می میرسید وقتی بنیامین اونجا گرفتن گفت اگر این بنیامین دزدی کرده برادر این هم دزدی بوده. حالا اینجا وقتی با کاروانیان فروختن به همین به تاجر گفتن که این دزدی هست سارق هست و فرار هم میکنه پس این رو دیگه محکم و عاز بهش کاروانی تاجر حضرت یوسف علیه و السلام را بست وا بست و یک غلام سیاه رنگ را مسئول نگهداری از یوسف علیه و السلام قرار داد. نزدیک کوچ بود که هر تپه می‌کنند کاروانی به طرف مصره. یوسف ولی حسرت و سلام خیلی گریه کرد، اشک می‌دید، گریه می‌کرد، وافلا می‌کرد. فکر کرد, می کرد. حالا چیه؟ چرا گریه می‌کنی؟ گفت دلیل منو پیش اون برا اونایی که من فروختن دوباره مونجا ببریم. اونجا می‌خوای چی کار کنی؟ گفت که می‌خوام خدا حافظی کنم. یک سلام به اونها بدم، یک خدا حافظی بکنم. چون دوباره من اینها رو نمی‌بینم. بزاری که خدا حافظی باشه. تاجر به غلامش گفت که اینو پیش همونها برسان دوباره گفت نگاه این غلام چه انسان وفاداریه چقدر اینا داره میفروشه و چه داره میفروش، اما این چقدر وفادارن ساز اربابانش غلام یوسف علیه رو گرفت گرفتو و رف پیش همون کاروانیان که یوسف علیه السلام پیش همون برادران که حفظی بکنه وقتی که اونجا رفت و زمان اونجا رسید که اینها خواب بودن. برادران گزفنده درست میچریدن اینها خوابیده بودن. یکی از برادران بیدار بود. به محضی حضرت یوسف علیه السلاة و سلاح اونجا رسید خلص و انداد در بغل همون برادرش. گریه کرد. گریه کرد گفتند که چرا اومدی؟ اون برادر چرا اینجا اومدی؟ گفت من اینجا اومدیم که شما رو یک سلامی بدم. یه خداحافظی بیکنن که دوباره چنین سلامی در کار نیست دوبارش شما آنو رو نمیبینید و تنها حالا شما لکه من شما رو میبینم برای خداحافظی اومدن در بغل همین برادر خیلی گریه کر گریه کرد گریه کرد دوباره همون داد کشید که برادر دیگر هم بیدار شدن چرا آمدی؟ گو برای خداحافظی اومدم باش ما خداحافظی بیکنن هر برادری که میرسی اونو بغل میکرد در بغلش گیرگه میکرد کرد و با میکرد می کرد یوسف علیه صلات و چقدر مهربان و برادران چقدر ظالم و هیچ ترحمی در قلب اونها نبود بعد هنگامی که بغل می کرد می که حفظ الله خدا شما رو حفظ بکنه و این زیعتمونی گرتش ما منو زعیه کردید اما خدا شما رو زعیه نکند خدا شما رو نگه بدارد و وآواکم الله و وان ترتمونی الله به شما جایگاهی بده شما رو نگه بداره گرچه شما منو بیرون راندیده رحمکم الله خدا بر شما رحم بکنه گرچه شما بر من رحم نکردید اونجا واویلا میکرد آهو و ناله میکرد گریه میکرد اما دعا خیر میداد برادران را وقتی نهاره میگو در بعض از روایات اومده که علامه آلوسی و علامه قرطبی هر دو تا این روایت رو نغل کردین از مفسرین معتبر میگن داد و بیداد یوسف علیه سلات و سلیه این قدر زیاد بود آه و ناله کرد که گسفندان بچه ها رو انداختن بچه های که آبستن بودن بچه داخل شکم داشتن بچه ها رو انداختن بچه ها سیخت کردن رو انداختن و اینجا یوسف علیه السلام و والسلام گریه میکرد و آه, آه, آه و ناله میکرد از فراغ برادران بی وفا بعد اینو دیدند دید اونها گفتن که حالا بری خدا حافظی کرد و دوباره همون غلام اونو گرفت تا بره پیش کاروانیان سوار شطور بود داشتن که بی گذر گزر حضرت یوسف کاروان درو حرکت کرد بود گزر حضرت یوسف علیه السلام و السلام از قبرستان کنعان بود این آن این آن که داخلو قابرستان مادرش راحیل دفن بود چون مادر قبلا وفات کرده بود به معنی که رسید به قبرستان اون غلام جلو حضرت ایسو خوشت سر سواره همون شطور هست به قبر که رسید خود را وارق انداخت و بالای قبر مادرش اومد بال قبر مادر خیلی گریه کرد خیلی گریه کرد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و صلی داخل صحیح مسلم حدیث داریم که وقتی مقام ابوا رسیدن پیش قبر مادرم خیلی گریه کرد الله رب العالم فرمودند که اجازه دعا نیست اینجا دعا کن برای مادره. نبی مکرنستان رفتن پیش قبر خیلی گریه کرد برای مادر اینجا هم حضرت یوسف علیه سلات قبر مادر رو دید خود شو انداب قبر بغل کرد و گریه می کر. و میگو یا اماه ای مادر جان دار که بای قبر مادر یا اماه ای مادر جان اخواتی فلجوب این برادران منو داخل چاه انداختند و دوای رو خودش خاک می‌ریفت داخل زنجیرها بسته بود و فرمودند که در چاه منو انداختند بعد بین پدر و بین من جدای انداختند منو از پدرم هم جدا کردند و بعد از دو منو با پول بسیار اندکی بی ارزش منو فروختند و بالبخص الاسمانی باعونی با, با پولی بسیار مفتی بنا دادم و هیچ تراهمی در قلبینها ها نبود حتی برای خورد سالی من هم رحم نکردم من چی خورد سالم بر من هم رحم نکردم و من از الله رب العالمین دعا میکنم از الله میخواهم که دوباره منو پیش پدرم برسانه تا بین من و بین پدرم دوباره یک وصلی صورت بگیره اینجا گریه می و وقتی که اینجا گریه میکرد کرد بودن که الله رب العالمین ارحم و راحمین هست بر من رحم کنه همین غلامی که مسئول بود دید پشت سر یوسف نیست زنجیر ها وستی بود و اما خودشو انداختی بود دوباره برگشت اومه. دید دیل یوسف اونجا پیش قرب گریه میکنه. این بذبخت غلام هم محکم زد یوسف را علیه السلام و السلام باذروات اینقدر محکم تو گوشش زد که بیهوش شد اواز میگن که بالاگا ز گفت راست گفت اون ها فروختن گفتن تو فرار میکنی و نمیستی حالا بینی فرار کردی حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام از امون کتکی که خورده بود بیهوش شده بود بیهوش که آمد فرموندن که لات و آخیزنی منو معاخذه نکن این قبر مادر من بود من پیش قبر مادر رفتم چون دوباره شاید دوباره ماذری من نبینم شاید دوباره اینجا در از این قبرستان عبور من نباشه به خاطر من فراری نیستم من فرار نمی کنم اینها استوا گفتم اینجوری نیستم اما این رها نکرده خیلی محکم حضرت نوصور علیه الصلاۃ و سلام را زد ابا دوباره کارو نمیخاله این دفعه نذارم دوباره این کارو نمیکنم نمی که این غلام از دیگر سر بالا برد سشمه ها بالا بردو دعا که اللهم انکانت لی خطیعه انجادی داخل خاقها غلطید اشکهار رو ریغت پر از خاک شد یوسف نازنین علیه صلات و پر از خاکش کر داخل خاقاون و غلطان او وقت صورت نازنین یوسف که چهرش جهان روشن میکرد کرد پر از خاک شد بستر برداشت اللهم اللهم امکانت لی خطیعه باری اگر از من گنای سرزل شده یا من گناهی انجام دادیم بار اله ها پس این به بخاطر همون پدرم ابراهیم پدر بزرگم اصحاق پدرم یاخوب ای خدایا از گناه من در گذر بفرما و گیگه می که پیش فروردگار وقتی اینجوری کرد در روایت قرطبی بی آیت که جیبریل گفت یوسف بس کنده که های آسمان بی گریه آمدن خیلی گریه کرد از بعض روایت میاد که الله رب العلی یوسف علیه السلامون چه انتا فوعندی و انت ارحم الراحمین بار الله تو رحم بفرما تو در بفرما تو ارحم الراحمین وقتی که اینجوری فرمودن که فزجت الملائکه ملائکه در آسمان داد و بیداد کردن گریه کردند اما الله رب العلی سلامون که به ملائکه ای ملائکه ما این نبی من هست و فرزند انبیای من هست یوسف هست که پدر و پدر بزرگ و جد امجد این نبی بودید این نبی من هست که و فرزند انبیای من هست این از من طلب خواسته من او را کمک میکنم و هر کسی هم از من کمک بخواد من به داد او میرسم جبرائیل امین آمد فرمودند که یوسف یا صدیق الله صدیق خدا یوسف صدیق تو حالا دیگه الله اللہ رب العالمین تورو سلام کرده امید فرمایند که یوسف حالا اب کیت السماوات تو فرشتهای آسمان رو بگیری آوردی و اگر می من آسمان رو به می زمین میرسونم رسونم یا زمین به آسمان میرسونم. در روایت قرطبی می یاد که فَأَجْعَلُ عَلِيهَ صَافِ زمین رو چپی می اندالتا از بین برن که تورو ازیاد از کردم. حضرت یوسف علیه صلات و سلام دیگه فرمودند که نه فرمودند که شما حلیم هستی بار تو حلیم هستی و اجل نکن من اینها رو نمیخوام معاخذی بشه اینها ظلم میکنن دارم میفروشم، اما این اخلاق نبی هست که میفرمایند که نه و وقتی که یوسف علیه صلات و سلام اجازه ندادن جبرائیل امین بازور زد به زمین یک گرد و غباری بسیار محیل و تاریک و سیاه برخواست و خورشید کلن سیاه شد تاریکی آمد و خود کاروانیان حیرت زده و خیلی وحشت زده شدهاند. این چه حالی هست رئیس کاروان تاجر یکی یوسف را خریده بود ها گفت که امروز خیلی مشکل عجیبی پیش اومده از این مسیر همیشه گذار من بوده هر سال از این جمع می, می آمدم چون این منطقه از این حالات پیش نا اومده اما امروز که این حالت اومده قطعا بین شما کسی گناهی رو مرتکب شده بخاطر همون جور اش الله داری اینجا معاخذه میکنه اگر جرم نمیکردی اینجا معاخذه نمیکرد پس این معاخذه بخاطر همون جرمی هست که کسی از شما مرتکب شده اگر کسی گناهی کرده حالت اعتراف بکنه توبه بکنه زمانی که حضرت یونس علیه السلام قبل از اجازه رفت به دریا اونجا هم کشتور در نبردی اینجا هم همین اتفاق افتاد بعد همون غلام گفت که بله این غلامی که شما خریدید در مسید چنین اتفاق افتاد و من هم من او را زدم یا سید اینما اینی لما ضربته آقا جان اینو من زدم امین بچه رو من زدم وقتی که زدم رو بالا کرد و به آسمان نگریست و گریه‌ای کرد و و دعایی فرموده زبانش تکان داد امکان داره بخاطر همین باشه این وقتی که این تاجر گفت که وایلا وای وای حق وای بر تو خودت رام هلاک کردی ما را هم تو هلاک کردی چه این کارو کردی تو چون تاجر درک کرد و فهمیده بود که این انسان معمولی نیست و خیلی با مواظبت برخورد میکن وقتی اینجوری کرد آمد پیش حضرت یوسف علیه السلام فربودند که این غلام این ظلم در حق شما کرده حالا همه ما در اختیار توی انتقام تو بگی انتقام بگیر و ما رو ببخش در بفرما بعد حضرت یوسف علیه السلام که شما میدونید که من از خانوادی نیستن که بر ما ظلم بشه ما انتقام بگیریم اونجا فرمودند که به اونها متوجه کرد که من انسان معمولی نیستن از بیت و نبود بیرون اومدم من فرمودند که ما از قومی نیستیم اگه بر ما ظلم بشه و ما بیم به خاطر همون ظلم انتقام بگیریم ما این کار رو نمی کنیم ولی قد عفاوتو انکم رید من شما رو بخشیدم و کاری به شما ندارم و به وقت این کار کرده، الله شما رو بخشید بعد از این میگه این تاریکی از بین رفت تو دوباره خورشید بیرون شد و راه صاف واضح مشخص شد شرق و غرب دوباره دیده شد وقتی که حالا در یک روایتی که مقاتل ابن سلیمان در تفسیر خودش یک روایتی دیگر آورده ان که وقتی یوسف علیه الصلاۃ و السلام اینها و کانوا فیه من الزاهدین در تفسیرش میفرمایند اینها که یوسف را بی رغبت بود هم اونها می, ترسید. می, ترسید. می ترسیدن هم اینها میترسیدند که کار عجیبی کرده بودند میفرمند نزدیکی که مصر رسیدند یه قافلی داشت برمیگشت، برمیگشت به طرف از انها پرسید بعضی بیگم قافل مالک ابن زعر بود بعضی بیگم مالک اینجا بود هر حال وقتی برگشت قید بیان گفت که ای سواری کجا میری تو تو من میرم به طرف کنعان تو اگر کنعان رفتی برو پیش شیخ یعقوب، پیر مردی هست مسین یاقوب علیه صلاة و سلا پیش همون برو و بهش سلام برسون. بگو یک جوانی به این شکل سلام. نگو من یوسفه. اما فقط بگو تر جوانی سلام میرسون و ظاهر شکل من برایش بگو. حد پدر مطمئن باشه. همین از که بعدها یعقوب علیه سلام فرمودن که آخر سوری بیرسیم. فرمودن بری فتحسس من یوسف و اخیه. دنبال یوسف در مصر بگردی. گویا این همون پیغام بود اینجا یوسف علیه سلام و سلام همون زمان بود. برو به پدر سلام برسون و بهش بگو که یک جوانی به این شکل تو سلام رسونده وقتی که اینجا اومد بگو من داخل میسر یک جوانی رو مراغات کردم و شکل ظاهری اون جوانی به این صورت بوده و سلام کرد شمارا وقتی این اومد پیش حضرت یاقوب علیه السلام سلام, سلام کرد و سلام و رسان یعقوب علیه السلام بازم گیری کرد گیری میک از فراغ یوسف و بعد گفتن که همون کسی قاصد پیغامی آورده بود از او پرسید که تو چیزی نیاز داری یا نه؟ گفت بله من یه خانمی دارم که این خانمو خیلی دوست دارم بیش از هد دوستش دارم از تمام جهان برای من همین خانم من خیلی ارزش داره اما از این خانم من بچه دار نمیشم از این خانم من بچه دار نمیشم دعا کنم بچه دار بیشم اینجا حضرت یعقوب علیه صلات و صلات دع که در خودش و اولادش برکت بزار. خانومش حاملش و دوازده شکن بچه زائد که هر دفعه دو قلو میآورده و هر دفعه پسر یعنی 24 تا پسر برای این آورد. چون فرضا نعمت هست. حالا دارین فرهنگ ما قدر این رو نمیدونیم. همیشه جلوگیری میکنن، سیخ میکنن که اینها با از دست برن. در حالی در فرهنگ انبیا بچه بزرغتری نعمت بچه هست. که الله رب العالمین حدیث نبی مکرم اسلام فرمودن که ان من اعطی بکسبه و اولادکم ترین بهترین درآمد شما اولاد شما هستند بهترین درآمد اولادن و وقتی حضرت انس رضی الله تعالی عنه خادم نبی کریم صلی الله علیه و وسلم که ده سال خدمت نبی کریمو کردن یک روزی مادرش و خالهش گفتن که یا رسول الله برای این انس که ما دعای بکن نبی مکردستان فرمودن این خدا بارک خلو فی مالی و اولاده در مال و اولادش برکت بگذار اینجا نبی مکردستان بر دعای برکت بر اولاد فرمودن حضرت انس در حیات خودش نزدیک سد نفر رو دخم کرد از بچه ها و اولاد وقتی بیش از سد نفر از بچه ها از بچه ها, ها و نتیجه ها زنده بودن این برکت این قدر اومد و باغش هم سالی دو بار میوه میداد. باقی حضرت عناس سالی دو بار میوه میداد. انجام حضرت کو دعا که خدای در مال و اولادش برکت بزارد. دوازده بار حامل شد و هر بار هم دوبلو آورد که پسر بودن. پس این اولاد بزرد تری نعمت اولاد یک متاسفانه زیاد مورد استقبال جامعه ایمان نیست. از این از زیاد راضی نیستند. اما اشتباه بزرگی هست هرچه اولاد بیشتر باشند این نعمت بزرگ الله رب العالی بی بازی بده و بذاری بچه بیاد نعمتها بزرگ الله رو قبول بکنیم بی که دوباره دوازده بیسو چار تا بچه آورد و حضرت یوسف علیه السلام به مصر رسید به مصر که رسیدن میصر باوجود یوسف پر از برکت شد برکت الله رب العالمین در مصر آمده و میصری ها بگه. از اون نور یوسف از تبرکات یوسف الله رب العالمین گزای برکتارا تا اینکه دواری یوسف را آوردند و به میث فروختند کسی در مصر او را خرید بعض گفتن که قدفیر او را خرید بعض گفتن اتفیر بود بعض میگن که فوتیفار بود این هر سناب در تاریخ و در کتابه سیرت آمده هم هم آمده هم اتفیر آمده و هم فوتیفار آمده هر سنام و علماء سیرت و تاریخ ذکر کرده اند. در ابن اصحاق یکی از امامان سیرت هست که عالم توانمند، امام مغازی خیلی انسان توانمندی هست که امام بخاری همیشه در کتاب خودش از این راوی معتبر در کتاب المغازی خیلی زیاد استفاده میکنه. روایتی را آورده وقتی که یوسف علیه السلام در مصر فروخته شده و یوسف را عزیز مصر همون فوتی فاروقتی خرید دوباره همین کسی فروختش مالک پرسید تو کی حسی گفت من یوسفم من فرزند یعقوب بن اسحاقم از خودش نامنشان شد اونجا گفت من قلانیم که درم یعقوب خانوادهش اونجا معرفی کرد اما زمانی این سوال پرسید که فروخته شده بود و دست خود امیر مصر رفته بود اینجا این سوال پرسید سوال پرسید بعد وقتی که شناخته چرا که اونها از مدین بودن اونها اولاد اسماعیل علیه السلام بودن یعنی پسر اموی هم دیگر بودن اما دیر متوجه شد وقتی متوجه شد فرمودن که لو اخبر اگر قبل ازیر می گفتی من تیا من تو هرگز نمی فروختم اما دیر به من اطلاع دادی و دوباره حضرت یوسف علیه السلام براش دعای خیر کرد میگن که خانوش حاملش شد و 24 دوازده شکم بچه دارش آمین آغا بود اونجا میرین یعقوب اونجا میرین یوسف به هر حال این دوار و دوازده تا شکم بچه آوردو و چار تا فرزند داشت. یوسف علیه صلاة و السلام حالا رسی به مصر خداوند متعال در ادعوی میفرمان که وقال اللذی اشتراه من مصر لی امراته کسی یک در میتر او را خریده فرم بخانوش گو که اکرمی مسواه احترام نگهدار جایگاه یوسف را آسا انفعانا امیدواری که وسیله این طفل ما به ما خائدی او و ولدا یا اینو ما بچه خود من قرار میدهیم الله می فرمود و كذلك مكنا ما به این صورت یوسف را داره جایگاه جای دادیم به یوسف داره جایگاه کرد یوسف را فی الأرض داخل زمین ولنعلمه من تعویل الاحادیس صابیو یاد بین تعویله تعبیر و تعویله علم را والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون خداوند متعال غلبه کنندگی است بر کاری که می‌خواد بکنه اما مردم نمیدونن ولکن اکثر الناس لا يعلم عمومی مردم این حکمت الله رب العالمین رو که از حکمت‌ها دارن قرار میکنن. مصر قبل از حضرت مسیح 2000 سال قبل از مسی مصر یکی از شهر های بسیار متمدن و زمان بوده یعنی 2000 سال قبل از عیسی اینجا حالا 2018 سال از میلاد مسیح رد شده حالا 2017 که ما از میلاد حضرت مسی هست. یعنی تقریبا هزار سال قبل مصر یکی از فائده های متمدن جهان بوده شهر بسیار متمدن و خیلی پیشرفته بوده چون موقعیتش وقوع خود مصر در حساس جای خواهر میانه هست جایی که تنگه ها در اختیار مصری ها و خیلی جایگاه مهمی مثل بیتوار جغرافی هایی دارد و اشاره متمدن جهان بوده حالا اونجا در اون شهر حضرت یوسف علیه صلات و سلام را الله بیشتر که و مکننا و کدالیک مکننا لیوسف همچنین ما به یوسف جای دادیم. یعنی جا چه بود؟ الله رب العالمین وقتی یوسف را به مصر رسانه، پادشاه مصر را به پایش انداخت. اولین بار در خرید یوسف کسیک به استقبالش اومده پادشاه بود. عزیز مصر اون وزیر خزانهداری مصر بوده که همه کار میسر بودی. اون بوم برای خریدنش. مصری که مصری ها, ها در اون زمان هرگز این بادگینشین ها و رستایی ها آدم حساب نمی کردن می گفتن ما متمدن حالا در وضع شهرها آدم ها رو آدم حساب نمی میگه می اینها دیگه اغمونده هست اینها مناطق محرومن ما هستی پیش رفته مصری ها همین چیز رو فکر می کردن که ما متمدن هستیم و ما خیلی جایگاه خوبی داریم غیر از خودشان کسی رو حساب نمی‌کردن اما الله رب العالمین آنها رو به جایگاهی رساند که یوسف وقتی که اونجا رسید همه جایگاه از دست دادند جایگاه اول و بزرگتری مقام هم از آن یوسف علیه الصلاۃ و السلام بود به هر حال وقتی که برد اونجا اون شخصی که حالا برای خریدن اومه الله میفرماین که اشترا خرید او را از مصر و فرمودن که اقربی مسوا اینجا میرسونه رسونه که یعنی شخصیتی بزرگ او را خرید دو دستور میده که جایش رو خوب نگه این همون فوتیفار بود یا اطفی یا اتفیری گفتم و این هم مسئول خزانداری مثل تمام خزانه مصر, مصر دستی ایشان بودن و پادشاه اون زمان پادشاه اصلی مصر ریان ابن ولید بود از طبیل امالقه بوده و وقتی که حضرت یوسف علیه السلام مبعوث شده همین آقا هم به دست حضرت یوسف مسلمان شد و در حیات حضرت یوسف دوباره این مرد وفات کرد بعد از اون قابوس قابوس پسر مصعب پادشاهه روسیه که این دوباره مسلمان نشود و بعضی میگن که این همون فرعونی بود در زبان حضرت موسی ظاهر شد چون فرعان 400 سال عمر کرد فرعون 400 سال عمر کرد و پادشاه تا زمان حضرت موسی و بعضی میگن که نه این فرعونی ای که زمان حضرت موسی رسی از اولاد این فرعون بود این اسمش فرعون بود تو پادشاهان مصر می میگفتن اما این فرعون مسلمان شده و اون فرعون مسلمان نشد و اون فرعون بعدی به دست اون فرعون به دست موسی یوسف علیه و السلام مسلمان شد و از اولاد همین این فرعون بعدی اومد که زمان حضرت موسی و این هم ما سلمان نشود پس دمانی که عزیز مصر حضرت یوسف علیه صلات و السلام را خرید حضرت یوسف علیه الصلاۃ و السلام انجا 17 سال سنش بوده و وقتی کومال در منزل در, در فوتیفار 13 سال اونجا ماند دوباره به سمت بزرگ وزارت رسید وزارت امور مالیه شد و خزانه‌دار مصر قرار گرفت در ان می, می رسیم جا و در سند سی و سی سالگی بسیم به وزارت رسید و زمانی که وفات کرد حضرت یوسف علیه صلات و سلام سال عمر کرد و بعد دنیا رو عالبدا گفتم. بیر حال اینجا وقتی که آمد در میدان مصر وقتی یوسف علیه صلات در مصر رسید و تیوگه فرمایش امام قرطمی رحمه الله در رود نیر وقتی قسلی کرد و لباس رو کرد اون خستگی سفر برداشته شد گرد غبار و شوس دوباره نور از چهرهش فواره میکرد که دیوارها روشند میکرد اینقدر براق بر بود که نورش بر دیوار انعکاس میداد و وقتی که آمد فوتیفا برای خریدش اینجا میگن که اینقدر طلا و جواهرات داد که خیلی با طلا و جواهرات وزنش کرد و او رو خرید خیلی مبلغی کلانی برای خرید حضرت یوسف اینجا داد و وقتی که اینجا گرف عمل پیش همسرش که آخر می مسوا که این جایگاه رو یوسف را خوب با او محبت بکن، جایگاه یوسف را حفظ بکن. این اولین اون حیبت یوسف در قلب اینها افتاد، حیبت خیلی زیاد بود. عشق این در قلب فوتیفار افتاد بود. اون فوتیفار یک افراد انسانهای آزاد روزتایی که هر آدم حساب نمی کرد، اینجا غلامی خودش خریده بود. علم از در خرید خودش اینقدر مقامش رفت شرفت بالا خامد پیش همسر دستور داد که از این بچه به صورت خیلی ویجهی برخورد کن و خیلی جایگاه عالی بهش انایت بکن این را اذیت نکن اولین حیبتی بود که در قلب او افتاد علماء میگن که این افرادی داره فراست بودن شاید انشاءالله در مورد فراست باها صحبتی کردید افرای داره فراست بودن سه نفر در تاریخ داره فراست عجیبی بودند یک از اونها همین فوتیفار بود یک بینش عجیبی داشت یه فراست عجیبی داشت به ای محض اینکه یوسف دید دید که این شخص شخص معمولی نیست در کدوم دانشگاه تدریس کرده بود از کجا اخلاق ادب یاد گرفته بود این اخلاق نبوت در وجودش بود اینها همین مرعوب کرد اون فوتیفار را فوتیفار مرعوب شد اونجا آمد و فهمید که این انسان انسان معمولی نیست دستبان افتاده و بخاطر این از همون روز اول دستور داد که از جایگاه یوسف درست باید حفاظت میشه این بود که اللہ رب العالمین اول این کارو کرد بعد وقتی که آمد پیش همسرش، فهم که نگاه کن اکر مصفا یعنی یعنی بی یوسف یه جای خوبی با عرضی جایی که خودش رازی واشه اندرشان یک شهزاده بیش انایت بکنه. و از این است که بیش غذای خوب بده، بهترین فزیرایی از یوسف بکن. این از که در یوسف دوار فهموندند که که این ربی احسن صواهی. جلوتر میرس. این ربی احسن صواهی. پروار من خوب از من من جای داره. این دو معنا داره. اون رب به من خیلی جای داد خوب انعایت کرد و در قلب اینا اینکاد منو بزرگ کرد که این ها مجبور از یوسف یتاق ات بکنم. از یک برده، دارا اطاعت میکنه اول برده اون داره اطاعت میکنه یعنی گویی یوسف با اخلاق کریمان خودش اونها رو برده خودش کرد یوسف برده اونها نشده الله رب العالمین اون احسن مسوایا به من جای خوب انایت کرد به سوره داخل قصر وقتی که پای یوسف باز شد اولین و عزیزی به همین بود که اکرم مسوا که جایگاهش خوب نگهدار یعنی گویی که یوسف با اخلاق خود بعض خصف زیبایی خود آنها رو این قادر مرعوب کرد که گویا کنها غلام یوسف شدن ظاهر یوسف غلامون ها اما باطن قلب اونها روح آنها همه تسخیر یوسف بود این خیلی مهمه. همیشه یک مقوله مشهوری هست که الاشق نارون تلوتر باید وقتی که به زلیخا که زلیخا خود در رسوا بیکنه اونجا علماء میگن که الاشق نارون بحر و کل شای و معشوق عشق یک آتشی هست که هر چیزی در مسیرش قرار بگیره او رو آتیش میزنه الا مقصود و معشوق خودش که اون نجات میده و پس این محبت عشق قلبی انسان انسانو اسیر میکنه کسانی عاشق اینا اسیرن اینا برده میشن در تاغ و زنجیره همون معشوق قرار میگیرن همه چیز اونها همون معشوق میشه خوراک کردن اونها معشوق میشه خوشیها معشوقن رفتار معشوقن بهترین دیوان دیوان معشوقه بهترین دیدار دیدار معشوقه بهترین کلام کلام معشوق هست اونها عاشقان لباس خود را مثل همون میکنن جای کوئن شسته همون جا رو دوست دارن همیکار کار همون میشه چون که در یک دوایت داریم که وقتی کسی کسی را دوست داشته باشه همیشه اون را میگیره به خودش به هر حال یوسف علیه السلام و والسلام اینا رو غلام خودش کرد الله رب العالی اینا رو غلام یوسف قرار داد همه عاشق یوسف همه ناکر در دست یوسف شده و یا بعض این از کادر یوسف به خانم عزیز مصر گفت که این آقایی که آقای من بود منو خرید از من خیلی خوب ازی کرد من چرا خیانت میکنم دوباره پس پاس داد اون درخواست دوله خاره که انشاءالله که پس فردا که اونجا میرسید به هر حال اینجا دیگه وقتی که آمدن پس این عزیزی مصر ایک از اون افرادی بود که خیلی فراستت بالایی داشت یوسف و شناخت و نفر بعدی هم دختر حضرت موسا وقتی که موسا رو دیل به پدرجان ای به گنوان چوپان انتخاب بکن این بهترین اماندار همینه. اونجا به پدر شعیب علیه سلاته و اسلام پیشنهاد دار شناخت که این جوانیک امروز داره به دوستانده دا من میده انسان معمولی نیست. برای بیدست آوردن موسی علیه و اسلام به پدر پیشنهاد داد که از این شخصه باید کار بگیری. این برای خودت نگه حویدار. و نفر سوم که خیلی داره فراست بالایی بوده، صدیق اکبر بوده. که بعد از خودش این زمام خلافت بزرگ اسلامی رو به دست عمر ابن خطاب سپورده وقتی سپورده اون مشوره هم نکرد فرمودن نوشت بعد از من عمر ابن خطاب خلیفه وقت هست پس واگذار کردن اون منصب بزرگ خلافت به شخصی بسیار لایق و بسیار مناسب که نبی و فرموده بودند که اگر پیغمبری بیاد عمر پیغمبر میشه در صحیب بخاری به کتاب مناقی میفرمایند که بعض بر زبانه بعضی کلام غیبی خدایی ظاهر میشه حق بر زبانونه ها اجرا میشه ایک از اونا عمر ابن خطاب در قومت من هست از دیر اکبر هم این امر را در اون زمان پرخطر که امپراتوری ها آماده حمله بودند، داد به شخصیتی بسیار توانمند و پس فرصت اینقدر بالا بود پس اینجا که از اونها فوتیفار هست که یوسف را خونه حالا شهری که اون زمان پایتخت مصر تقریبا امروزه شهری به نام سان هست سان کجا قرار داره امروزه این سان تقریبا همون پایتخت اون زمان مصر بود که حضرت یوسف علیه و السلام اونجا رفتن در حال اونجا برد که از دلخواه اینو بگیر اقربی مسوا جاش خوب کن ما فرزند نداری آن تخته و ولاده یا یوسف را فرزند میگن چرا؟ چون که این خود به اصطلاح فوتیفار وزیر مصر عزیز مصر این بچه دار نمیشد این عقیم بود به خاطر این که علی نما برومان بچه خودمان حساب میکنیم و بچه ما هست و بجا بچه قبول میکنیم به خاطری هلا شخصیتی را که برده هست و بزرگترین شخصیت نفر دوم مصر آمده جلوش. این است که مسواه بزرگ الله رب العالمین انایت کرد خود همین که بزرگان اون روزی که یوسف علیه سلات و در مصر عرض شد اون زمان خود فوتیفار آماده برای گردش با کل کابیر خودش یوسف را دید و اونجا مکسی کرد و, و خرید کرد برد به هر حال الله میترمک "والله غالب غالبون علا عمره ولاکیننا اکثر الناس لا يعلمون خداوند متعال همیشه کاری که به او او انجام میده بر کار خودش غالب هست در حالی که اکثر مردم نمیدونن نگاه کن برادران خواستن که محبت یوسف را از قلب یعقوب بیرون کنن یعقوب را داغون کردن اینا خواستم ما یوسف میکوشی تا قلب یعقوب از محبت یوسف خالی بشه اما الله و الله غالبون على عمره الله بر عمر خودش غالبه هست این کارو کرد که اونجا یوسف را بورد بیرون و اینها باقار خوشون اون حیلی که اینها بکار برده بودن داغون کردن یاقوب علیه السلام و سلام. در چا انداختن که یوسف ببیره و لاوی و تناب رو کرد کرد و, و تا روز بیفته و سرش وجا سخت بغزی بکنه اما الله رب العالمین والله الله غالبون على عمره جبرئیل و فرستاد و یوسف را در آغوش گرفت یوسف را فروختن که در برده بشه از کنعان فاصله بگیره تا از دیر یاقود دور بشه قلب یعقوب همواره پیش یوسف بوده هفتاد هشتاد سال یاقوب در فراغ یوسف میتفیده فرستادن تا او را بفروشن و از شرش خلاص بشن بردهش کردند. الله رب العالمین والله غالب و علا عمره الله کاری دخل انجام او رو به پادشاهی مصر رساندن مصری ها او رو خریدن فکر کرده این غلامی هست تا که یوسف اون ها رو برده خودش قرار داد مصری را نجات داد والله عالم على امره درس این است که هر الله رب العالمین بخواد کاری انجام بده تمام قدرت ها و تمام سیاست ها و تمام نیروها اگر جنبشان اما هرگز نمیتونن جلوی امر الهی رو بگیرن یا ذره اون کارو منحرف میکنن. بکنن در حدیث صحیح نبی مکرم اسلام فرمودن یا معاز ای معاز می که اگر لو اجتمع تل انسو اگر انس جن جن بیشن اللہ ان ینفعو که بشین فایدی برسونن و اون فایده الله رب العالمی ننویشت برای تو لن ینفعو هرگز فایده رو به تو نمیتونن برسونن و اگر انسوجین جنگ بشن تا که تو رو برسونند و الله رب العالمین به اون ضرر راضی نمیشه لم یذرو بشه هرگز اونها نمیتونن تو رو ضرر برسونند و الله غالب علی امره الله رب العالمین کاری بخیر و کار انجامی ده و جور کار الله رب العالمین گرفته نمیشه علیه الهات چجوری بود کارها چجوری بود مسافتات چگونه تیشد شد که برنواهای آوردن؟ اما الله رب العالمین کجا آورد یوسف را فرمود اکرمی مسوا او روز اول خطاب کرد که یوسف را جاه خود اولی جایی که در میسه پا واس کرد روز به روز عزت و کرامت و اون بزرگی یوسف در قلب اونها بیشتر میشد و این است که اونها دیگه نتونستن کاری انجام بدن پس اینم میگن که وقتی که اونجا آوردن خود عزیز مصر یوسف را با خیلی دیدگاه خیلی بزرگی نگاه میکرد خونه میرد معمول نگاه نمیکرد با یک اجلال و یک اکرام بزرگ نگاه میکرد و سلام میداد بزرگی یوسف و اعتراف میکرد بکرامت یوسف علیه السلام, السلام. بسید